دوستان اکنون میخواهم صحبتی کوتاه درباره هفتخان رستن بکنم از رفتن به هفتخان خیره شدن برای یافتن چشم خورشیدگونه البته در این گفتگو نمی خواهم به تفسیر کل هفتخان بپردازم بلکه بیشتر به تجربه رستم در پیکار با دیو سپید می خواهم بپردازم که فوقالعاده اهمیت دارد و نشان بدهم که درستم در پیکار با دیو سفید همون با همون پدیده جی و اجی یا زندگی و زد زندگی یا زندگی افضائی و زندگی زداری کار دارد که زردشت در گاتا اساسه آموزه دینی خودش قرار میدهد پیش از اینی که وارد این بحث بشوم خواهم به نقطه کوتاه اشاره بکنم که فوق العاده اهمیت دارد و اون این است که ما شاهنامه را درست نمیفهمیم به علت اینه که تصویری بسیار غلط در ذهنمو از پهلوان و پهلوانی جا انداختم این تصویر پهلوان و پهلوانی است که بیشتر از دوره ساسانیان از دوره چیرگی موبدان زردشتی پدید آمده است و تا اندازه زیادی در شاهنامه بازتابیده شده است ولی در همون خود شاهنامه رد پای اون تصویر و اون آرمان حقیقی پهلوان موجود است و در اونجا میبینیم که پهلوان کاملاً نقطه متضاد و متقابل موبد را داشت، است و کاملا نقطه متقابل و متضاد تصویر پیامبری را داشته است این هاست که به کلی نادیده گرفته می شود پهلوان هنر راه ربتن با دیده خود است این به کلی با ایده پهلوان که در دوره ساسانیان حتی زیر دست موبدان قرار می گرفتن و نقش بسیار تنگ، تنگی بازی میکردند و در واقع حق رفتن و دیدن و تصمیم گرفتن با دیده خودشان را نداشتند چون که بالاخره پیامبری و موبدی بر اساس رفتن با دیده اهورامزده یا خدای دیگر یا با طبق آموزه است. در صورتی که این ایده راه رفتن با دیده خود که بنیاد پهلوانی بوده است درست ایده است که ما امروزه بدان نیاز داریم و با این دیدهای با این ذهنیات اسلامی و زردشتیگری این نکته را در شاهنامه اصلا درک نمی کنیم یا اینی که نادیده از آن می گذاری. من این سخن را با شعر اصائب شروع می کنم که نکته اساسی این سخن هست می گوید که در گردش ما به سر خود چو آفتاب مانند سایه پیرویه کش نمی کنیم در گردش ما به سر خود چو آفتاب مانند سایه پیرویه کش نمی کنیم این خلاصه و زبته اون بینش پهلوانی که اساس فلسفه پهلوانی اساس فرهنگ پهلوانی در ایران بوده است و امروزه به کلی فراموش شده است و فقط این از اون زورمندی و کشتیگیری و رجزخانی و پهلوانو امثال اینها در تصویر ما از پهلوانی باقی منده است در صورتی که, که نیرومندی تن و نیرومندی خرد و روان و زمیر با هم دیگر آمیخته می و این استقلال این از خود بودن از خود دیدن هم بود از خود اندیشیدن هم بود اینها خیال باپی نیست بلکه اینها چیزهایی است که ما در شاهنامه نمیتوانیم خودمان ببینیم این ذهنیات ما ما را باز میدارند که ما این هسته و مغز بنیادی شاهنامه را درک بکنیم در هر حال ظالزر با خبر یافتن از تیر شدن چشم کیکاووس و سپاه ایران وقتی با خبر می شود که اینها اسیر شدند و چشمشان همه نابینا و تیر شده است، به پرزندش رستم چنین میگوید همانا که از بحر این روزگار همین پرورانی دمت بر کنار همانا که از بحر این روزگار همین پربرانی برکنار بر کنار من که فرزند و جفت سیمرغم ارتای خوشه هستم ارتا خوشت من که پیکریابی سیمرغ در این گیتی هم یعنی پیکریابی بن نوشبی در این گیتی ام تو را برای رویارویی با چنین رویدادهای سحناکی که من تو رو برای این خاطر پرورا میدم تو مسئول اجتماع خودت هستی نگهبانان ایران شاه و سپاه و اینها رو نگهبان میگفتن نگهبان یعنی که با دیدهشون خطر و زندگی آزاری رو از خارج باز میدارن نگهبانان ایران در اثر بی شدن با آن که چشم دارن ولی دیگر بینش ندارن و خردشان در بی اندازه خواهی تبدیل به ضد خرد به ضد زندگی شده است تو این مسئله را ما در این صده هم همیشه داشتیم دار میگوید خرد نگهبانان ایران در بی اندازه خواهی زد زندگی زد خرد شده. به شدند. بی مهر و ناجوان مرد شدند و بی مهری و ناجوانمردی مردی خود نیست در اثر همین نابینایی نه تنها آگاه نیستند بلکه بی خردی خود را اوج خردمغرایی هم میدانم و سختلی های خود را مساواتمندی های خود را مهربانی با مردم می و نا مردی های خود را آوچ جوان مردی می خرد اجده شدند شدن زندگی ایران پرو می بلد ولی ایمان دارن که خردشان جان افساس زندگی افساس تو را ایرستم برای آن پرورانی که هنگامی که حکومت و نگاهبانان ایران از فجون خواهی بینش خود را از دست می دهن برخیزی و از سر چشمان آنها را روشن و بینا سازی. تو را برای آن پرورانی که چشمان نگهبانان ایران را اندازه بین کنی که شیوه زیستن به اندازه را ببینن و بیابن ببین تو نمی آنها را رهبره کنی و پیشوای آنها بشه بلکه می روی تا چشمان هر را از خودش روشن کنی از خودش بیناسو تو می روی تا چشم هر کسی را گوهر چراغ سازی تا خودش بتواند نیک را از بد را از عجی زندگی را از ده زندگی در هر هنگامی باشناسه و بتواند در ظلمات آب زندگی را بجوید ای رستم تو می‌روی که به هر کسی جام هدیه بده بدهی کار تو نیست که برای رهبری کنی کار تو این است که بری جام به هر کسی بدی که هر کسی با جام خودش به همه گیتی رو ببیند تو را برای اون پروردم تا چشم خردی که از بی اندازی چوی کور شده اندیشنده بزرد زندگی شده از نو روشن و بینا سازی و خردی که خرد زندگی زدار شده است، از. از سر اندیشنده برای زندگی افضایی سازی ببین رستم خویشکاری تو گونه کردن چشم همه آنها کار تو اینست که بری چشم ملت رو، چشم های مردمان را خورشیدگونه کنی ببین این رسالت با رسالت همه این ازیان نوری فرد داره نمی روید یک آموز و شریعت به کسی بدهد بلکه چشم و خرد هر کسی رو روشن میکنه که خودش بتواند ببیند خودش نیکوبت رو بتواند از سنباز بشند کاری تو تحول دادن خرد زندگی زدار به خرد زندگی افزاست برای آمادگی برای چنین کاری من که جفت سیمرغ هم من که پیکریابی خدا در چهره انسان هستم این زال ببینید زال این پر سیمرغ که میگوند با او هست یعنی جفت و سیمرغ من که پیکریابی خدا در چهره انسان هستم من که از شیر از پستان خدا نوشیدم. به تو آموزهای و شریعتی و امری و کتابی و فلسفهی نمیدهم من به تو نه کانت را یاد میدهم نه مارکس را یاد میدهم نه هگل را یاد میدهم نه قرآن را یاد میدهم نه گاتار را یاد میدهم بلکه باید نخست با آن که پردند منی چشمان خودت در تاریکا شگفتیها، یاد بگیرن که ببینن و در شگفتیها در شگفتی ها خیره فرو مانند. تا آنکه که چشمانت، چشمانشان از خودشان روشن و بینا شود. نخوص خودت که فرزند منی باید چشمان خودت در تاریکیها ها و شگفتی ها یاد بگیرند که ببینند تا چشمی پیدا کنی که خودش میتواند زندگی را از در زندگی، را از اجی در هر پدیدی و هر رویدادی که اینها همیشه به هم آمیخته‌اند، همیشه متولد از هم جدا کنند. این یک فرمول کلی نیست. بلکه در هر هنگامی تو باید در هر رویدادی بکوشید که بدی و نیکی را از هم بتوانی جدا کنی. این با هم در هم پیچیدان تغییر میکنن این بدیه همیشه و همیشه بدی نیست اون خونی که همیشه نیکی نیست ببین راهی بگذیم که پر از شیر و دیوست و پر تیرگی تو راه جستجو رو برگذیم آموزه آموزه من به تو نمیدم شریعت به تو نمیدم حکمت به تو نمیدم پرزانگی تو خودت راه تیره رو برگزین تا چشمانت ببیند بماند او چشمت از خیرگی حدخان تو خان خیر شدن از شگفتی ها جی و عجی زندگی و زد زندگی روچن و آشکار و برهنه پیش چشم و خرده تو قرار نگرفتن که زندگی را با آسانی برگزینی. ببینید این واژه خان ما فکر میکنیم شاید با سفره و طبق نان و با امثال اینها کار دارد این خان همون واژه اخوان است نا دو تا یک واجه است این با این فلسفه فرهنگ زالزری یا سیمرغی کار دارد که این اصل دنیا تخم دنیا بونه تاریک جهان هستی اخو است که بعدش این شده آهو اخ اخ ولا که اینا رو بعدش زشت کردم برای خاطر این برای خاطر اینکه این فلسفه این رو وارونه کنم این اخو این عک این ارکه در شگفته شدن و گستر شفتن جهان شگفتی ها می شود و همزمان به آن روند اندیشیدن باخرد و مامای زایدن جهان می شود. ببینید دو کار با هم می با هم اتفاق میند. یکی حسی یافتنن یکی اندیشیدن اینها، در این اخو اخوان ملازم همه تو هم در فرهنگ ایران به معنای بد رو دانه است هم تو تم شده است یعنی تاریک تخم قناه درونی دارد ولی تاریک تخم در پرهنگ ایران پیش از زردوش به معنای از خود زادن و از خود بودن بوده است کسی او را نیافرده بوده است. تخم معنای بیان اصالت و چیزی بوده است. خدا در فرهنگ زالزر زر تخمی تاریک است مینو است چنجه هست چنه است که در پایان در پایان و شدگی و جهان و شویه هست که خدا و روشنهایی می شود خدا بل یه تقمه همین خدا نیست بعدش که جهان شد بعدش که همه جانها شود اون وقت می شود خدا و روشن این از ترکی از بون از ناچیز به همه چیز از قطره به دریا پیدایش هستی این همانی با پیدایش بینش و اندیشیدن داشته است. به هستی رسیدن و اندیشیدن دو روند دو آمیخته و یکجا با همان اون که نومی اندیشه هستیش همزمان با آن نو شود اندیشه ای نو که واقعیت و حسین میابند اندیشه ای نو که در زندگی ما آتل و باطل میماند این اندیشه ای نو نیست این با ما سر کاری ندارد یک چیز قرضی و وامی هست اینست که در ما نمیروی هست. در خدازمایه های در زندگی بینش و روشنی از خود انسان می میجوشد و زاده میشود پیشوند اخو در اخوان یا خان که همون خان هفت خان رستم همون واژه اخو و اکو و حکوس هم در پارسی هم در کردی این اکو و حکو بود. هم اکو به معنای تعجب است هم به معنای دایع است هم عکو به معنای شگفتی است هم به معنای دایع در کردی هاکو ندید خرید کردن است ندید کار کردن است یا هاکو در کردی به معنای کجاست هاکو و عکو حرف تعجب و عگر است حتی هکو با چشم بسته لیلی رفتن است ببینید اینا همه باقی مونده است متون زردشتی بر ضد این اندیشه بودن چون که همین اخوان رو که اخوان باشه تبدیل به دیو کردن این افکار فرهنگ ما تنها در متون زردشتی باقی نمونده است. متون زردشتی یک که تمام اون چیزهای از فرهنگ ایران که به دردش نمیخورده است، حذف کرده است و دور ریخته هست و سرکوبی کرده ببینید به جغت که این خومن در سقدی به بهمن خومن میگون که همین اکومن و اکومن باشه اخومان باشید ببینید از تمام ردپاها باقی مونده است چون این بهمن بن خرد تمام دنیا خرد ضد خشم خرد ضد قهر ضد جهاد بهمن خومن این کلمه کو اكو اخو در میبینیم که به جغت کوکو کو گفته می شود در شعر خیام میآید در جاهای دیگر کو کو ما خیال میکنیم میگید کجا کجا ولی به این مرغ مرغ پرسش است که مرگ پرسش است مرگ بینش در تاریکی بهمن خدای فلسفه خدای فرزانگی اصل فرزانگی در همه دنیا بر پایه کو کو خرد بهمنی با کو با کجا با اگر با شگفتی با لیلی, لیلی کردن دار... در تاریکی به اندیشیدن میپرداخت. این است که خرد شگفتگر بهمنی همون اکوان و اکومن است که در الهیات زردوشتی چون که خدای های دان از همه چیز آقا هر بیست آقا اهورامزا با چنین بهمنی جور در نمی آمده است بهمنی که از تاریکی، در تاریکی می, می و بینشش فقط از این،, از این بون آغاز می شود اون اهورامزا از روشنی بینشش آغاز می شود نیست که این دوتا دو پلسفه با هم نمی خواندن. این واژه اکو پیشوند همون واژه اکوان و است که در الهیات زرتشتی زشت و دیوی و اهریمنی ساخته شده است چون بینش با این روش را به کلی مطرود میداند اه اهورامزدا همه چیز را میداند در پیشا پیش پیشاگاه است پیشدان است و هیچگاه شگفتی را نمیشنست چون یک که از همه چیز آگاه است هیچی به شگفت نمی افتاد. و در مسئله خیره نمی شود چون همه چیز برایش روشن است رفتن به هفت خان آدمای شجاع یعنی به هفت اخوان به هفت اقوان درست نقطه مقابل و ضد آموزه زرتشت است که جی و عجیب زندگی و زندگی را زد زندگی را در همون لحظه نخست به کلی از هم جدا و با هم متضاد پیش چشم هر انسانی می یعنی یعنی جیب عجی درست در اوج روشنی پیش آبیش چشم هر انسانی هست یعنی چی؟ یعنی آموزه زردوش اهورم آموزه می دهد که این بینش جیب عجی را کاملا از هم جدا می کنند. و خراب فقط باید برگزیند یا این یا اون که عملا همون عقل اسلامی میشه. رستم در پایان گذر از این خان ها از این اخوانها از این کوها کجاها چونها ها اگرها در این پایان گذر از این خان هاست که چشم در هر کدام از آنها چشمش در هر کدام از اونها خیره میماند. در پایان این هست که به چشم گونه که همون جامع جمع است میرسه. چشم خود روست می شود جامع جمع هر کسی با چنین چشمی در زندگی جیب عجیب زندگی به زندگی را زد زندگی را که با هم آمیختن. و به سختی از هم قابل تماهیدان میشنند ببینید این به کلی با آموده زردشت فرق دارد رستم پهلوان دورمند دورخانه ای نیست رستم اسفندیار نیست با دید زردوش میدید رستم از دید خودش جهان را میبیند رسیدن به بینشی که زندگی را از ضد زندگی بادشنازه در گذر کردن از خانهای خیرگی در انسان پیدایش می آورد. دیگران کتاب و مقدس و میزان مقدس دارند. ولی تو ای رستم من که هستم بدان که فقط تو چشمی داری که میتواند تواند در هفت خانه تاریک جستجو اندازه ها را بیابد و بینا و روشن شود مسئله هفتخان مسئله گلاوی شدن با هفت اکو هفت اخو، هفت پرسش، هفت خم و پیچ، هفت سردرگمی و گیجی و حیرت هفت بونبست، هفت شاتر، هفت پارادوکس. ببین روسان تو باید با هفت پارادوکس با هفت تا حیرت با هفت و بنبست روبرو بشی تا چشمت گشوده بشم به تو بینش درست است که دایعه تو سیمار بوده است و من پدر تو هستم نه من به تو چیزی نمی آموزم چیزی یاد نمی تو با چشم خودت باید این چشم در این هفت بون در این هفت پارادوکس در این هفت حیرت در این هفت پرسش چشمت رو کم کم باز بکنی بینش از تو دایده بشه خردد به حرکت بیفته بیاندیشه خیرگی در این خانه در این گیچوی ها نیاز به چی دارد؟ نیاز به گستاخی دارد تا بتواند از هر خانی بگذارد و از گیجی و مات شدن در حلقه پارادوکس راه گذر به بیرون را بیابند. در پارادوکس در گیچوی در مات شدن انسان در یک حلقه دائره شروع میکند بین دو قطب یا چند بدر گشتند و راه بیرون همه اینها درستند و از همه اینها زده همان و کسی راه بیرون رفته از این را ندارد در اینجا چی لازم است؟ گستاخی لازم است انسان گستاخ یکی از گستاخی یکی از بزرگترین مفاهیم مثبت فرهنگ ایران بوده است که این به کلی باز معانی منفی و زشت و تباه پیدا کرده است که ما باید این را دقیقا از هم باز بشنست